به نام دادار ارمز بخشاینده مهبان و با درود بر فروهر اشوزعتش اسفنتمان اشم بهو وحیشت مستی، اوشتا استی، اوشتا احمایی، هی از اشایی هیشتایی اشم درود بر شما هممیهنان گرامی و بهتر بگوییم درود بر همه پارسی زبانان در همه جای گیتی امیدواریم هر جا که هستید شاد و تندرست و پیروز باشید. من تارا هستم از انجاممن زرتشتی مانترا و امروز در پیشگاه معبد مهندس کامران جمشیدی هستیم و از معبد بزرگوار درخواست میکنم که اگر سخنی در آغاز با بینندگان گرامی دارند بفرمایید. <تصفيق> خوشنودی اهورامزا خداوند جان و خرد و با درود بر روان و فروهر عشر اسپنتمان این بزرگ آموزگار پیامدار و بینشور بزرگ ما و آموزگار همه ما و درودی هم میگم به همه شما کسانی که این برنامه رو میبینید و این سخنان رو میشنوید و این نخست نشان میده که هم همزبان منید، همزبان مایید و سپس به همه نیکان و بهان هفت کشور زمین به بیش همفرهنگیان اگر بخوایم نامش رو بذاریم یعنی کسانی که شاید هم زبان ما نباشند، ولی هم زبان ما باشند. در فرهنگ. در روی به همه شما درود میگم و خوشنودم که در این روزهای خوشی که داریم به نوروز دوباره نزدیک میشیم در کنار شما هستم و گپی خواهیم زد در این مارد بفرمید بفرمیدارم از شما و اما نوشتاری بسیار زیبا از موبیت کامران دمشیدی، نوروز پیروز و فرخ از راه می رسد. چند روز دیگر مانده به آغاز سال سه هزار و, و, و, و گامهایش گرامی باد. گرامی باد او که همواره باز می گردد و همواره نو می شود و نوم می نماید. گرامی باد او که میآید تا دوباره نشان دهد که روند سپهر را سر بازی دادن می. فربی و تاریکی پایدار نمیماند و گرمی و روشنی جای آن را میگیرد. اما میدانیم که در تاریکی و سرماست که تخمه زمین، روند زایشی خود را آغاز می کند تا آنکه در روشنایی و خوشبویی بهار خود را بزایاند و زایشی نو پدید آورد انسان نیز همین گونه است و با روند عشا و سقر همخانی دارد مگر آنکه خود آن را برهم زند که اگر چنین کند فرسایش و تباهی خود را گسترده اد اما اگر اگر هماهنگ باشد در زمان تاریکی و سرمای زندگی می به روند زایشی خود ادامه می‌دهد و تخمه پیدایشی نور را از خود و از ریشه و بن فرهنگ خود می‌بندد و پرورش می‌دهد تا بهارش رسد و آن را بزایاند و ببالاند. صدای گام بهار را رو میشنویم. نوروز نزدیک میشود. یکی از پررنگ ترین سنت ها و مراسم ما ایرانیان و بسیاری از کشورهای دیگر که در این سنت با هم هماهنگ هستیم. از موبد کامران جمشیدی میخواستم بپرسم یک تاریخ چی از نوروز رو برای ما بگن؟ پیشینه نوروز به چه زمانی برمیگرده؟ چقدر بیرینگی داره؟ سفات گزارم بسیار خوب. آری همواره از نوروز گفتن خوب است، نیکوست شادی شادیاور است. واجه تاریخ تر رو به کار بردی؟ جالبه که وقتی آدم چه رو میچسبونه به پایانه واژه چه خب کوشکش میکنه اگه بخوایم بگیم در حالی که این تاریخی است بس راست تاریخ چه که تاریخچه که از تاریخ هم دراستر است و طولانی تر است به روی شاید بتوان گفت که نوروز کهن ترین جشن نه تنها ایرانی بلکه جشن انسانی است براستی. و دسته آنچه که در در نوشتارهای کهن ما در یادمانهای کهن ما باقی مونده آنچه که پیشینیان برای ما نوشتنده به ما رساندند از نوروزنامه ها تا شاهنامه ها و تا نوشتارها و گفتارهای دیگر بر روی به ما این نشان میدهد که نخست نوروز با پیدایش انسان سر کار دارد بر روی زمین و سپس با پی... تا بهاری که هر سال برای ما با گشت و فرگشت طبیعت و زمین فرا میرسد و اگر بخواهیم که از آغاز آغاز کنیم پروانه بدید که با شاهنامه آغاز بکنیم و ببینیم که شاهنامه که به هر روی نامه نیاکان ماست و از دل و زبان نیاکان از راه چهار چهارتن از موبدان آن زمان که از نامه پیشین داشتند تا به خود به دقیقی و سپس به پردوسی پاکسات سپرده شد و ایشون در شانومه برای ما آورد در بخش که اون مرس خب میدونیم به عنوان نخستین اگه بخوایم بگیم انسان در شاهنامه آمده که خود میشود گفت که نماد پیدایش انسان است به این صورت آمده که پژوهنده نامه باستان که از پهلوانان زند داستان چنین گفت کاین تخت و کلاه که او مرس آورد و او بود شاه چه آمد به برج حمل آفتاب جهان گشت با فر و آیین و آب به زانسان ز برج بره که گیتی جوان گشت از او یک سره که یو شد بر جهان که خدای نخستین به کوه اندر ساخت جا حال این آمدن برج به برج حمل آفتاب نشان از همون آغاز میشه گفتش که فروردین است و آمدن سال نو که البته به همین بسنده می کند و میگذرد تا به زمان جمشید جمشید یا زمان جمشیدی جالب است و هر حال داستانی دراز دارد آنچه در شانران میاد خب چون نمادین است میدانیم همون که کیومرس به عنوان نمادین شد یک تن، یک انسان جمشی یا ییمه یم، ییمه، ییمه، ییمه، جمشیدم شد یک انسان در برخی خانش ها نخستین انسان جمشید بود و در این خانش نخستین انسان کیومرس و نخستین شاه جمشید. به هر روی از دوران جمشیدی آنچنان یاد می شود که دورانیست پرشکو، دورانیست پر از سازندگی از پیش ولی تا که شاه گرفته به وجود آمد تا به وجود آمدن از جمله آهن و غیره شهرسازی، ساختمان سازی، برحال سازه سازی و روی هم رفته میشه گفتش که انسان شروع کرد به محیط زندگی خودش رو ساختن و به گونه ای شهرنشینی از اون زمان آغاز شد، آغاز شد. یعنی دوران بسیار خوی پیش آمد که چه بسا بر گفته همین حتی مرگ هم از انسان دور شده بود و اونجا بود که جمشید باز هم در همان روز نخست سال و تخت می نشیند و آن روز را روز نو می خواند که از اونجا هم نو روز جمشیدی آغاز می شود که تیکر من از شاهنامه براتون میخونم چون کارهای وی آمد به جای ز جای مهی برتر آورد جا پای به فرد کیانی یکی تخت ساخت چمایه بدو گوهرم در نشاخت که چون خاستی دیو برداشتی ز هامون به گردون برفراشتی چه خورشید تابان میان هوا نشسته بر او شاه فرمان روا جهان انجمن شد بر تخت او از آن بر شده فرره بخت او به جمشید بر گوه رفشاندند منان روز تا روز نو خوندند سر سال نو حرمز بر آسوده از رنج تن دل زکین به نوروز نو شاه گیتی بر آن تخت بنشست فیروز روز بزرگان به شادی بیاراستند می و روغ رامشگران خواستند چنین جشن فرخ از آن روزگار به از آن پس یادگاه یادگار روزه هرمز فروردین می‌دانیم که روز نخست گاهنامه زرتشتی روز هرمز است روز پرمز است روز اورمزد است که آغازگر ماه هست و آغازگر ماه فربره. حالا میخوام یه تیکه دیگه هم بگم که شاید خب بسیاری رو نشیده باشم در این مورد اه، در اه، کتاب یا دفتر دیگری که بخوایم بگیم از گذشته برای ما به یادگار مونده به نام وندیداد یا دیدرداد آغازگر این کتاب از دوران جمشید گفته داره که نیست بز دراز از 700 و 800 سال تا 1000 سال گفتگوه هست و این خب به گونه هم باز نشان میده که سخن از یک تن نیست سخن از یک دوره است و شاید هم بدین گونه که بوده که سرآغازگر این دوره کسی به نام جمشید ای من بوده و هر کسی که پس از اون میومده به نام بنیانگذار اون نام... نامش بوده این رو نمیدانه ولی به هر گوی صحبت از این است در اونجا که حالا اینا همه نمادین هست دیگه از گذشته اون داریم داره میگفتگو می کنیم اه... که حتی اهوران مزداوی زدن میان و با جمشید گفتگو میکنند و بهش میگن که زمین سر خواهد شد حالا به سادگی من دارم یم و بنابراین شما از آنچه که هست بر روی زمین از گیاه و جانور انسان نمودارهای خوبی رو جمع و جور کنید و اینها رو در یک جای امنی بگذارید تا از اون سرمایه زمین حلاک نشوعد. تا از جای دیگری هست. کسی و به جمشید میگن که یک شهر بساز یا یک در واقع یک جایگاهی به ساز که نامش اومده ور جمع کرد و حتی جزئیات هم درش اومده که از جمله 4 تا دالان اصلی داشته باشه و هر دادر هر دالانی هم 18 شاخه که این خودش در واقع اگه بخوام 4 رو 18 حساب کنیم این شمار 72 شاید از همونجا هم آغاز بشه. به هر روی در این مورد گفتگو زیاده و خب هر کسی هم های گوناگونی هم هست که اینها چه شد، که بودن، چه شد و حتی در این دورهای اخیر هم های زیرزمینی پیدا میشه در آنجا اونجا که برخی از خانشا میگویند این همون واجم‌گشت است نمیدانیم به ولی چه چیزی به حال برای ما پدیدگان مونده و اگر این روند رو ببینیم در هنگامی که آرام آرام به هر حال اون یخبندان دورانش به پایام بیرسی که دوران طولانی هم بوده دوران مسیح درازی بوده و بعد آروم آرام انسان ها دوباره روی زمین به زندگی خودشون میپردازن در اون اولین میشه گفت یا زمانی که دوباره اون گرمای بهاری حس میشه در واقع انسان دوباره زاده میشه و زندگیش بر روی زمین دوباره آغاز میشه و اون روز روز نوست اون روز نوروز هست و از سوی دیگر هم به هر روی بر باور پیشینیان بر اساس اون افسانه های آفرینشی که تمامی آفرینش در شش گامه بوده نه در شش روز و اینها ولی در شش مرحله در شش گامه که از دید خرد و دانشی هم به نظر درست میاد که میدانیم اول آسمان بعد آب بعد زمین بعد گیاه و جانور و انسان که ما جشنهای گاهانبارمون که داریم شش گاهانبار سال رو هر گاهانبار رو افزون بر اون شوندها یا دلال دیگری که دارد که طبیعی است بر اساس طبیعت از زندگی طبیعی انسان و هر کدوم هم بر حال نمادی که از این آفرینشها داریم و در نظر میگیریم و هر دوره گاهانبار هم پنج روز است تا به گاهانبار هم از پتمیدیم که واپس این گاهانبار سال هست که بر پایه پیدایش انسان قرار دارد و پایان گاهانبار هم, هم که نوروز است و نوروز آغاز می شود این از کمی به هر حال تا اونجوری که تونستم هم کوتاه بود هم سعی کردم تلاش کوشیدم که که جنبهای گوناگونش رو نازل بگیرن در مورد پیشینه نوروز خیلی دارم بسیار بسیار چیزایی بود که من واقعا نشیده بودم با اینکه خب خیلی از نهرش شما می و میدونید که شاگردتون هستم ولی خب پیج داشت برای من تازگی داشت نه با موبد من یک پرسشی از شما دارم نورو یک جشن گچ با تصوری که شما درباره تاریخ نوروز گفتید در واقع پاسخ این پرسش رو دادید یعنی حالا میخوام خیلی واضح چون این برای بسیاری هنوز آشکار نیست که نوروز یک جشن دینی هست یا یک جشن میهنی هست بله ببینید اینجوری بگم به سادگی که هر آنچه که هست که امروز ما به نام از دین گرفته تا حالا فلسفه تا هر چه که بخوایم نامش رو بگذاریم و خود ما اصلا مرتو مردم انسان و دیگر آفرینشها زاده طبیعت است یعنی همه چیز ما از طبیعت آغاز میشه. همچون بخشی هم گفته شما گفته شد طبیعت رو زندگی طبیعی ما بر روی زمین هست که جشن میگیریم و تمامی جشن های ما ایرانیان زرتشتیان بر مبنای گردش زمین و گردش و فرگشت طبیعت است از ترین زمان تا سردترین از روشنترین زمان تا تاریکترین، از میانه های اینها از فصل های گوناگون از زمان های گوناگون بهرهگیری از زمین کشت بر زمین رسیدن به دام بهره از دام و و و پس از طبیعت آغاز شد و بعد ما ب... به قول معروف تاثیر خودمون رو گذاشتیم روی اینها حالا چون در ایران زمین با آین های مزداری آین های ایرانی و سپس آیین آین و دین از روزرتوش تنگ گره خورده و این فلسفه و این به صراح اون بنمایش در درون همه این جشن های ایرانی رفته و تار و پود هم شدن و از هم جدا کردنی نیستن اگر پس به سادگی بخوایم بگیم این جشن ها هم طبیعی است هم مردمی یا میهنی و هم دینی زرتشتی است حالا اگر تمامی نمادهای دینی زرتشتی رو شاید خیلی های که نوروز رو میگیرن خب ندارند. آنچنان که امروز زرتشتی‌ها شاید یک سری آینها رو دارن که بقیه ندارن این مهم نیست ولی به هر روی در درون نوروز هست در درون اون سفره هفتن یا هر هفتی که دیکرد میخواهد باشد که اون بعدا حتما پرسش خواهد شد در درون اونها هست بنابراین همه اینها با هم هست. اینها رو از جدا نکنیم از یک سو از سو دیگه هم هر کدوم اون بخشی رو که دوست داریم برداریم خودمون رو از اون بدونیم دیگران رو هم، نفعی نکنیم انکار نکنیم این به اسطلاح چیزهای روزمره اگر بخوام بگم سیاسی یا اختلاف بین مردمان یا گروه یا یا هرچی بخواید نامش رو بذارید اینها رو نیاریم به شما نمیگم دارم به همه میگم داخل این چیزهای خوب و شادی آفرین بکنیم اگر خوب است و می بینیم که دانشی درش هست خردی درش هست شادی درش هست امید درش هست سرسبزی و نشاط درش هست نگرش داریم گرامیش بداریم همونجا که جهان گرامی میدارد میدانیم که نوروز رو حتی سازمان ملل هم به عنوان جشن ایرانیان میشه گفتش که به رسمیت و شناسنامه جهانی دادن ولی این هم میدونیم که امروز اگر ما به مرزهای حالا اسمشو بذاریم سیاسی امروز نگاه کنیم فقط ایرانی نیستند نیستن که جشن میگیرند تمام همسایگان پیرامون ما در اون کره جنوبی که به هر حال روزی همه زیر یک در یک میهن بودیم همه جشن میگیرند حالا امروز با هر زبان و هر فرنگی میخوام باشند در این نقطه و در این نقطه که نوروز باشد همه هم زبانیم، همه مشترکیم و این نقطه قوت نوروز هستش که همه ما را به هم پیوند نه با من یک پرسش که دارم که شوند این پرسشن من هم کمپین هایی هستش که الان درست میشه مثلا میگن که کمپین مثلا سب به نکنین گندم گندوم میشه یا حبوبات حروم میشه یا مثلا ماهی قرمز نداریم سر صکر نخواست که میخواستم از شما بپرسم که زرتشتیان چه چیزهایی بر خانه نوروزی میدیدارن و در پرسش دوبام از این هستش که نگر شما در مورد این کمپین هایی که تشکیل میشه و تحریم میکنند بعضی از سیپایی رو که بر روی تالیان سال هستش که ما از اونها بهره میبریم یا اینکه بر روی میشناسیم نوروز رو با این چیزها نگره شما در مورد این کمپین ها چی هست بله بله من هم به حال مانند همه جواه این رویدهات ها هستیم در این سالهای گذشته می‌شگفت بخشی طبیعی است از این رو که با به هر حال هایی که در جامعه ایرانی روی داده و دست کم از یک سو اون بخشی که به بیرون آمده و به گونه دیگری به هر حال با مسائل برخورد میکنه چه اون بخشی که در درونه و اونها هم تا های خودشون دارن و نگرش‌های خودشون دارن برخی همراه با ایرانیان بیرون و برخی هم از اونها در واقع میاد یگانه است خب اینها باعث میشه که راجب این مسائل نظرهای گوناگون بیاد بیرون و نمیشه پیش راهشو گرفت که بزور اما میشه با به هر حال با گونه توضیح و گزارش و پرداختن به آنچه که راست و درست هست آدم اینارم حل کنه آروم آروم یه بخشیش هم خوب همیشه هستن کسانی که در واقع میشه گفتش که ایراد گرفتن و انتقاد کردن و خوردهگیری میشه یه بخشی از وجودشون حالا به هر چیز و این راهی میشه برای این که خودشون رو فقط نشون بده چون اگر همراهی کنن خب شاید به امزار دیده خودشون در میان در گروه بزرگتر شاید پیدا نه ولی راهشون این میشه که پس بیان یه جای افرازی بکنه بیان یه جای سنگی بندازن من حالا بخشیش رو اینجوری میبینم که منو ببینید منو ببینید, منو ببینید، منم اینجا هستم این از اون نیازهای خود نمایی انسان ها میاد بیرون که خب آکی اون هم جای خود داره ولی هم حالا نوروز به ویژه و هم بقیه جشن ها اینقدر نیروهای طبیعی خودشون رو دارن که به راه خودشون خواه. اما اینکه چگونه این جشن برگزار میشد و میشه خب مانند بقیه جشن ها مانند بقیه آین ها در درازای زمان شکلهای گوناگونی به خودش گرفته و میگیره. خب انسان هستیم دیگه شما همین امروز نگاه کنید برای نمونه جشن زاد روز مثلا حالا خودتون یا هر یه روز ممکن بود جشن زاد روز می‌گرفتن خیلی ساده برگزار کرد بعد یک روزه که اومد حالا یک کاغذ رنگی هم این ور زد یکی اومد یک بادکنکی هم باد کرد اون ور خب یکی میگه بعد از چند سالی که گذشتی میگه آه این بادکنک از کی مثلا رصف شده که بزنن. حالا اگه زیباست تو هم بزن. حالا اون به جای خود. ببینید تمام میشه گفتش که باز ها و آین های ما یک زیربنا داره. اون زیربنا بنیاد تو همه اینا یک سانه. از آین هایی که مانند سرد پوشی آین پیبند و حتی در گذشت بگیر تا آین های جشن ها جشن های گوناگون و به ویژه جشن نوروز یعنی در واقع ممنون در مورد اون به اون خان یا صفرش صحبت میکنم بگذاریم که یه چیزایی از قبلش آغاز میشه مانند برای ما زرتشتیان به هر یا ایرانیان اون زمان آیی ای بخوام بگیم اون ده روز پایانی سال که میشه گفتش که باور بر این بوده که فروح درگذشتگان در گذشتگان باز میگدن در این روزها به نزد خانواده های خیش و میخوان که اونها رو شاد ببینن اونها رو تندرست ببینن و این بخشی از در واقع فلسفه خانه تکانی و پاک و پاکیزه کردن درون و بیرون برای خوشامد گویی از روانها و های در گذشته‌گان خاندان‌ها بوده. خب برای اینها اینهای گوناگونی بوده به ویژه پنج روز پایانی سال که به نام بسیاری اون پنج روز افزون شده یا پنج گاه یا گاه های بیو، ماه های بیو، پنجه دو زیده، پنجه مصفرقه نام های گوناگون داره اون پنج روز رو به نام پنج گاهانبار نامگذاری شده که در اون هم به صلاح گاهانبار خودش گاهانبار هم از هست و آین های خودش دارد و و بعد در روز پایانی هم که آتش افروزی می شده ببینید در بالای بام ها و بلندی ها که هم آمدن نوروز رو در واقع با آگاهی هم برسونند از کرده ها هم آغاز میشونه در واقعه و هم نمادین به بدرقه در واقعه به پیشواز برای بازگشت فروهرها رفته باشد این بخشی از آیناست که خب اینا دیگه شاید فقط زرتشتیان آن هم نه همه جا دیگه اجرا بکنند بخشی رو که فقط خب آدش افروزیش مونده که اونم باز حتما پرسش چهارشنبه سوی رو بمیام میاره. ولی این که حالا در روی سفره هفت سین چی گذاشته میشه؟ هی هی هر بار هی باید تکرار بشه که آوازی ها میگفتن برخیل میگفتن هفت سین برخیل میگفتن بعد شد حفچینی هف یا هفت که به نظر من همه این هم بوده در طور این زمان خب هر کدوم به شیوهایی هایی در اومده ولی اگر امروز از من بپرسید و میپرسند و میپرسید و همشا میگم به نظر من همون جور که تو بقیه گفتم آینهای ما آن نمادهای های امشاسپندان اون شش و یا هفت مرحله رسائی مینوی یا تعالی انسان به سوی بهتر شدن همیشگی خود و رسیدن به پا... پایه های بالای تکامل خودش و در واقع خود خودنمایان شدنش به درستی در زندگی این گوناگونی میتونیم بذاریم حالا جاودانگی میذارن، بیمرگی میذارن آن چیزی امرداد گفته میشه و خرداد امرداد چیم های خودش رو مفهوم خودش رو داریم ولی به هر حال اینا امشاس بندانی که ما اسمشو میذاریم بسیار نماد های خودشونو دارن که رو همه صفره ها هستن از حالا یکی هم بخوام به سادگی بگم ما از عشا یا عشا و یا اوتی بهشت به آغاز کنیم بسیار نور آتش همچه که آتش و نور باشه نماد عشاست نماد حقیقت هست نماد قانونمندی جهانی بعد از بهمن یا پهومن نه نیک یاد میکنیم که رنگ سفید و آنچه که از بسرا زندگی حالا جانوری یا جان در واقع بگیم این نمادش بوده که حالا شیر چون سفید رنگه و از جانور سفنتایی میاد روی سفره ها نماد وحومن است بعد میاد شهریور یا خشتراوهیر شهری و چون نماد نیرو و قدرت بهینه برای پیشبرده کاراست در روی سفره ها هر چیزی که فلزی باشه میگذارن از سکه گرفته تا ظرف های روین یا ظرف های فلزی البته در خانش هم همون در واقع شیر رو به گونه باز چون فشرده و ای هست که میاد بیرون باز نماد خشت را می ولی بیشتر همون سکه و فرز رو می بینن با امان نیرو و قدرت و بعد می آین اون اینا ستا همچاسپند نخستین بودند که اینا در واقع کننده کارند به راه اندازنده اون فرایند هستند و ستای بعدی نتایج کار هستند که سپنتا آرمیتی رو داریم که نماد زمین هست زن و زمین و زندگی میدانیم گفتگو شده در موردش که معمولا سیب نماد زمین هست و نماد سپنتار میتیست سیب سر که بروی سفره میاد و بعد خرداد حروتات یا خرداد که نماد است که آب نماد خرداد است که آب هم یا در یک ظرفی که همون ظرف روین که توش آب گریزن و بعد اون سیبم هم میذارن توش که هم سه هم همشاستند با هم هستش. و سپس هم امرداد که جاودانگی که گیاه و رویدنی که همیشه سبز هست نماد امرداد هست. و اهورا هم که نمادش همه اینها هست و اون اگر بخوایم بگیم اون انسانی که پای اون سفره میشینه. حالا امروزه شده این هفسین هف سیرین که امروز میذارن من هم نمیدارم از که آغاز شده ولی از هر زمان که آغاز شده اون هم باز به نظر من این فکر و نحوق ایرانی رو میرسونه که با این هفتا چیزهایی که اقلامی که امروزه است، دیگه میدونیم یه سیر و سرکه و و سبزه و سنجد و سما و اینها که اینها رو نمادون کرده. که نمیدونم نیازی از آیا اینها را بازش بکنم که چیست بگوید به من ولی به هر در سپس خوضه آره آره البته این هم خوب خوبه که گفته بشه من این تئوری که براش گفته شده چون به نظرم من خیلی خیلی رضماندانه میاد درست میره، اینو پذیرفتم و اینو منم تکرار میکنم که اولا این نام ها یعنی این چیزایی که انتخاب شده نام اینها اولا باید فارسی باشه یعنی نام مثلا غیر ایرانی روش نباشه دو اینکه از به دنیای دنیا گیاهی بیاد از گیاهان بیاد بیرون و خوردنی باشه برای نمونه گل که خب گل سنبول میذاریم که اونم زیبایی خودشه اصلا داستان است و خیلی هم زیباست ولی جزده این به صلاحی نیست و نامش هم نام ترکیبی نباشه یعنی دوتا نام نباشه یک نام باشه و این هفتا که نام بودم اگه نگاه کنیم میبینیم که همه اینا رو توش داره حالا اگه باز دقیق تر بخواییم بدنی اینه من باید رو نوشتی کنم دقیق گفته باشم اشتباه نکرده باشم برای نمونه خب سرک حالا چیه سرکه رو چون از انگور خب انگور هم در ماه امرداد میرسن پس این شد سرک نماد امرداد سماغ یا سماغ اون درختش در ماه خورداد گل میکن و میرسه اون میشه نماد خورداد سیب که گفتم سیب نماد اسپنت آرمیتی یا اسپان هستش سمنو از گندم گرفته میشه. و گندم هم در ما شهریور آماده خوردن میشه پس این میشه نماد ایریه یا شهریور و بعد سنجر رو داریم که سنجر هم در در واقع در همون ماه بهمن باز خوردنی میشه پس اینم نماد وحومان شده و سبزه هم در بهار در ماه اردیبهشت بهش اردی میروید و سرسبز میشود که این هم شد ماه اردیبهشت و سیر شد نماد اهورا حالا بعضی هم میگن چرا سیر خب سیر یه بوده امروز هم داروست داروی بسیاری از دردها بوده بعد این پدران ما این نمادها رو انتخاب کردن گذاشتن خب کاری هم زیبا ولی حالا ما چکار میکنیم اگه میخوام کوچک بگیریم همینا رو میذاریم این هفتا سین کوچولو. به اضافه اون. اگر چیزی کم باشه از امشاسپندان، آتش که همیشه هست یا گل همیشه هست آب همیشه هست حالا ما می هم میذاریم یا می در واقع یا شراب عقزون بر دیگه تخم مرغ و آینه و کتاب میتونه کتاب دینی باشه میتونه شانوه باشه میتونه حافظ باشه و در واقع اینجوری بوده که تمام داده های اهورایی هم طبیعت هم خوراکی رو روی صفره میذاشتند که این هم نشان برکت و فراوانی باشه هم برای سالی که گذشت و هم برای سالی که در پیشه حالا ماهی باشد یا نباشد حالا من سرش دعوا نداریم از کی راستش ماهی سرخ اومد سر سفره منم نمیدونم هم از خانه پدری همیشه این ماهی بود ولی خود ما الان چند سالی نمیذاریم به خاطری که میدیم ماهیای بیچاره یا میمیرن یا اینکه چیکارشون کنیم با یه نه ما نه میداریم نه دریا دریاچه اس البته ولی ماهیای کوچک بیچاره اون تو می اینه که بچهای مام همین ناراحت میشدن خب ما نذاشتیم نه زمین به آسمان رفته نه آسمان به زمین اومده این اصل کاریا هست سر این موضوعاتم سخت نگیریم و بی خود هی دست هم دیگه ندهیم و نوروز رو گرامی بداریم می خواهید ماهی بذارید، می خواهید نذارید اون دیگه به خودتون معلوم می این پاسخ من می خواهم ما بهت برنشید سبزه معمولاً وساشتیان هم ستا سبز می کنن نماد اندیشه یه نیه که هی گفتاره می شود، یکی کرداره اینم. ام، ام، یه یادآوری بکنید چون دوستان خیلی دوست دارند که بدونن زرد توشتیان چی روکی میدارنطوری ام... که ببینید باز هم اینم میتونه گوناگون باشه ببینید زرتشتیان امروزه هم که از وقتی ما میگیم زرتشتی در همه جای ایران پراکنده بودیم دیگه حالا درسته در این چه میدونم دی صد سال گذشته کم و بیش بسرا عزیز سوهونسو اونم براسر اجبار جمع شدن توی یک دو شهر مرکزی ایران یزد و کرمان بیشترشون دیگه و در جاهای دیگه هم بودن و هستن و بعد خب بخش بزرگی از اینا به تهران روانه شدیم در تهران که آمدیم این شهرنشینی بزرگ باعث شد که محام از هم دور بشیم خیلی از اون آینهای که توی اون جوامه کچکتر یه رنگ رو و یک حالا هوای دیگری داشت اینها هم در شهرنشینی بزرگ شوربختانه خیلیاش رفتند به اون صورت که آدم دلش میخواست بیشتر نموندن ولی که شما سه تا سبز چیز حتمی نبوده ما همیشه یه دونه سبز سر صفران بوده حالا برخی دوست سه تا بذارن برخی دوست هفت تا بذارن برخی دوست 10 دهتا بذارن ولی زیباست چون همه اینا نماده. اندیشه گفتار کردارنی خب زیر بنای دین و اندیشه ماست. بنابراین به هر شکلی که اونو نمایان بکنید خیلی زیباست. یه روز دوازده تا ستون گوناگون میذاشتن رو همه اینها از دانه گوناگون میکاشتند. می کاشتن. و هر کدوم از اینها که بیشتر میروید، اون رو در سال جدید برکت می بیشتر از اصفاده بنابراین اون هم زیباست. چرا که نا اون هم زیباست. پس از گفته های شما من به این برای رسیدم که دوستان گرامی برای خانه نوروزی اون هر سه چیزی که روزه شما میزارید سر خانه مهم نیست. مهم این هستش که نماد چه چیزی هست و خیلی ها میگن هفت با سین شروع بشه من حتی دیدم چیزهایی میذارم برسی که واقعا هیچ ارتباطی نداره به خانه نورسی و فرهنگ ما و لنگ با شروع بشه بر روی داده های احورهایی باشه برسایی آنسیز که مهوا موبفت هم مهوام موبفت خیلی چکیده درباره باره چهار شمب هم اگر ممکنه یکتون بسیار بسیار پرسشت می دوستان میگه برپی اکو چکیده اگه بدی یا حال. اگر نمیشه چکیدید بگید که که تو رینگ یه بار کشت ما رو شوخی میکنم از اون, از اون دیدگاه که دیگه امیدوارم به هر حال بخش بزرگی از کسانی که دنبال میکنند پین میگیرند، علاقمند هستند دیگه پاساخر رو بدونن. این رو میدونیم که به هر حال چار شنبه چون روزهای هفته بدین گونه در زمان قدیم نبوده پس بنابراین ما چهاشنب سوری را داشتیم در قدیم یعنی یه روزه این آتشی بوده که روز یعنی در واقع شب آخر سال افروخته می که روز بعدش نوروز روز می ماده. به همون دراری که گفتم آتش بالای بام ها و بعد به پایین بر حال خیابان ها و حال در روی زمین حالا چه شد؟ ما هم از آن چیزی که گفته ها و نوشته شده میخوانیم و میدانیم یعنی من هم در اون زمان زاده نشدم که بتونم بگم صد در صد چنین هست آیا چنین بوده که اونم با خرایت جور در میاد که پس از دوران اولیه بسیار سختی که ایرانیا به ببیجه در واقع فرمان روایی عباسیان و مبیان و سخگیری هایی که بوده نسبت به ایرانیان جشن ها برگزار نمی شده هر دلیلی خاصین بارک ایرانی ها تونستند دوباره بیان جشن بگیرن و این آتش رو میخواستن بیافروزن که برایشون خیلی مهم بوده و هست حالا مسئله چهارشنبه و نمیدونم به خانشایی بد بودن یا بچگون بودن این روز بهانه کردند. و شب قبلش رو آتش روشن کردن گفتن میخوایم ما این بچهگونی این روز چهارشنبه رو از بین ببریم یا برخی خانه میگه که در نخستین باری که اومدن دوباره جشننا رو بگیرن اون آخرین روز که رو هم از میدیم که در واقع زمان آتشاف روزی بوده افتاده به شنبه شب اینها گفته میشه خب. حالا کدومش به راستی درست بوده من هم نمیتونم بگم آیا امروز این کار بکنیم یا نکنیم چون در قدیم فقط همین روز آخر سال بوده شاید شاید یه روزی در نهایت اکثریت یا همه به اون نچه برسیم که آقا نیازی نیست حالا همیشه دنبال آخرین سه شنبه باشیم خب همون شب آخر سال آتش رو میکنیم و مانند گذشته میریم یه روز هم شاید به اونجا برسیم ولی حالا تا اونجا که ما میگیم گفته ها رو میگیم حتی اینکه از روی آتش نپریم خوب نیست دور آتش بیستیم خب این رو هم ما همیشه میگیم آره چه بهتر که شیوه قدیمیان به هر روی آتش روش نمیپریدن آتش رو پیرامونش میستادن و میپرستیدنش یعنی پرستاریش میکردن و شادی میکردن پیرانونش حالا بعد باز این هم یه سری توری دیگه براش ساخته شده حالا از کجا اومده باز هم نمیدانم و هر روی که برای نمونه این نماد سیاوش است که از آتش گذشت و بیگناهیش رو ثابت کرد پس این از روی آتش پریدن نماد سیاوش است. شاید هم بخشی این باشه و یا زردی من از تو، سرخی زردی سرخی تو از من که باز نماد این هست که ما میخواییم تندرستیمون و سلامتیمون از آتش میخوایم که به ما کمک کنه با نیروی خودش با گرمای خودش، با انرژی خودش و تندرستی ما رو برای ما نگه داره خب اینا هم زیباست خب حالا خرد میگه دیگه هنگرم میخوایید یه آتشی باشه که حالا از روشم اگر کسی دوست داره بپره دیگه رو اون آتش بزرگه اینا نپرید که جان و همه چی خودتون رو به خطر بندازید یه گوشه سه آتش برگزار یا هفت آتش کوچک کن بذارید بچه‌ها درشون خوش باشه کمکشون نه که بچه‌های کوچیکی های حالا پوسوق ببینید من بازم اینو میخوام بگم که اولا هیچ چیز هیچ وقت فقط سیاه یا فقط سفید نیست، ما زمینه های خاکستری در همه چیز زیاد داریم. در گذره از آینی به آینه دیگر آین ها و سنت ها نه از آسمان آمدند و نه مقدس هستند به این معنا که نشه دستشز نشه تغییرشون. ولی باز به این مفهوم نیست که هر چیزی رو هی بیاین انگولکش بکنیم، فقط به خاطر که من خوشم نمیاد یا من فکر میکنم که اینجوریه فوری عوضش کنیم نه آتش رو روشن بکنیم تا اونجا که میتونیم کاری به آتش نرشته باشیم از زیبایش بهره ببریم پیرامونش بایستیو شادی کنیم باز هم میگم اگر یه خیلی دیگه این حالا یکی به ما یه چیزی میزن از رو آتش بپری حالا یه آتش کوچیک یه می از روش بپر یواش یواش اون هم میتونه به کنار بره یا میتونه باشه من آدم سختگیری نیستم جانم و اینها نه تنها چگونه بگم اگر ما پایه ها رو بفهمیم اگر اون معنا و مفهوم و درستش رو بفهمیم اون در دل و جانمون زنده نگه داریم اون در زندگیمون به کار ببردیم در اخلاقمون در منشمون در روش های زندگیمون اگه نه اینها نمادین هستن، اینها سمبولیک هستن. حالا با یه سیب این ورون یا با سین رو شین کردن نه من باید دگرگون بشم عوض بشم نه دنیا دگرگون رو عوض میشه. بنابراین اینها رو یاد بگیریم که از ظاهر به درون بیاییم. اینها رو از بیرون بگیریم از خودمون بکنیم. وقتی که از درونمون میاد بیرون بعد همه چی جای خودش رو میگیره. سر زواهر به هم نپریم. اگر مرد کاریم اگر زن کاریم اون آن چیزی که اینها نمادشند اون رو بگیریم و از خودمون بکنیم و در اندیشه و گفتار کردارمون به کار این وقیه درست خانش. بسیار سپاسگزارم و مانند همیشه بسیار بسیار بسیار, بسیار بحره بودم خیلی دیباس خنگوشی که و این رو منم خودم میدارم که شما اصلا سخیرونی سید و بسیار با همه چیز به دید روشن نگاه میکنید شادم که شاگرد شما هستم و به خودم دراستی میبالم میبالم هزار بار میبالم که شاگرد شما هستم ای دوستان نمنام برسوشی از آتش نمیتن برلوی بهتر هستش که چون آتش دراستی لجاسبی برای مقابل احترامه اگر دوست دارید که سنت نیاکان رو زنده نگه دارید آتش رو روشن کنید و دورش به شادی به فردازید یه خیلی زیباتر باشه تا اینکه بخواید این کار رو بکنید به دید من البته اینگونه گونه از میگن استادم میگن که دشواری نداره ولی خب هر روی برقایه آنچه که سنت میاکان ما بود نیست. محوان موده گرامی. زمان ما بسیار کمه. من یک کوتاه در مورد انجامن زرتوشتی منشا برای دوستان گرامی بیننده بگم. دوستان گرامی انجامن زرتوشتی منشا به فرشی موده کان را یک انجامن آموزشی هست که محوان موده آموزش میدن در اون انجامن برای دوستانی که نمیتونن در ایران و در نقاط دیگر به صورت حضوری فزه پوشت کشن یک دوره آموزش و دوره داریم و از اون محبا موبل شما رو از طریق برنامه زوم فزه پوشت کنن. البته این را هم بگم که آزمون های بسیار زیادی داریم شاید در هر گروه دین آموزا 50 نفر 60 نفر در هر دورهی که ما آگهی میدیم نام نبیدیم و در نهایت 10 نفر سوزه توشیدند. بنابراین دوره آسانی نیست و باید دین خرد هست و باید دانه و سپس گزینش کرد و این آرمان موبت کانگان جمشیدی هست. ما در انجمن مانترا راه دوستان دین نیاکان هستیم و به شما رو یاری یعنی میکنن این امکان رو فراهم برای دوستانی که به راستی دوستان آینه میوکان هستن میخوام مود بخشای از میایش آغاز سال نو رو هم برای ما بفرنید تا این برنامه رو به پایام برسونیم بسیار خوب بسیار خوب سپاسگزارم البته نیایش سال نو چندین نمونه وجود داره و آخرین چیزی که به هر رو چون از سوی انجمن موبدان اومده بیرون من اون رو براتون میخونم که خب اولش چه بخش عوستایی برحال اوستایی هم به گوشتون خورده باشه و بعد چمش رو به فارسی میگیم و به پایان میرم شناور آهورای مزدام، هی تا آت یزم آهورم مزدان یگام چا اشم چا دات پس چا داد اروراست چا وانگویش رو چاوز چاو دات بومین چا ویس چاو چا ووو دایی تی کنام چا و ایدیو نام یت ارونو یزم ایده اشاو نام آت ارونو یزم ایده کدو زا تنام چیت نرام چا نایری نام چا یا شام وحیش و با دنگ هنو واو و او it واو آو تیتاو یا زم ایده وانگوش اید. چاو ایت وانگوش چاو ایت سپنتنگ امشنگ جنو سو يبای اقنیشو بیم هما زور بیم هما زور کرفه کاران بیم دور از بناه و بناه کاران بیم هم کرفه بست کشتیان و نیکان و هفت کشور زمین بیم دیزی بیم، درست بیم، شاد زیبیم تازی بیم به کام بیم، گیتی من باد به کام تن مینومان با, با کامه روان همازور بیم همازور هماشو بیم هشم و هو و هشتم استی گوشتا و هستی گوشتا و احمایی یدشایی و, و این بخش پایانش پازند بود و بیشترش قابل فهم بود در حال اون بخش هم به کوتاهی میگوید تورای اهورا می‌پرسی میپرستیم که قانون اشاه را بنیاد نهادی آبها و گیاهان و روشنایی را آفریدی همه جهان و همه داده های اهورایی نیک را آفریدی می این روان یلان و پهلوانان و مردانو زنان نیک که با وجدان نیک بر بدی ها برمیخیزند میثاییم مردان و زنان نیک اندیش و جاودانه را که همواره با منش پاک زندگی می کنند و همواره سود رسان هستند همان شود که آرزو داریم به بشود که از راستان باشیم همازور باشیم همازور نیک و کاران باشیم دور از بدی و بدکاران باشیم با همه زرتشتیان و, و دیگر مدمان نیک و وه هفت کشور زمین یا همه جهان همکار باشیم بیر زیبیم درست زیبیم شاد زیبیم تا بیم به کامه و خوشی زیبیم گیتی به کامه تن باد و مینومان به کامه روان با همه زور باشیم در راستی و درستی هم زور باشیم نوروز بر همه شما شاد و پیروز باشد هر روزتان نوروز باشد شاد باشید نیک باشید راست باشید خردمند باشید و براتون تون آرزوی همه نیکیار دارم برای شما هم تارابان امیدوارم که سال خوب و خوشی برای شما هم باشه و برای همه هم همبندان انجمن انجامن هم همه همجوری که در این نیایش اومده ماده بود همه زرتشتیان، همه بست و نیکان و بهانه هفت کشور زمین ایدون باد ایدون, باد. ایدون باد. بزارم. بزارم از موبد زمشیدی. ما چون همیشه به موبت گرران میگیم و موبت دیگه در برنامه تلویزیونی هم همین بودنهشون می کنیم در حال مه با مو بسیار ازتون سپاس بزارم بسیار بسیار از شما آموختیم همیشه و همین آموزیم و در آینده هم خواهیم دوستان گرامید گرامی. پیش سال۱۷۵ ه ز توشتی رو به شما شاد باش میگم امیدوارم که سال نو برای شما سالی فرشار از شکوه و فرد، تندروسی تن، تن، پیروزی تن، دارایی بسیار خوردمی آور و آسایش بخشنده فرزندان نامی به اندیشه نی، گفتار نی، کردار نی و روشنایی سراسر خوردمی و آسایش باشد این از نیایش احمایی رایش بود و برای همه شما بهترین آرزوها را داریم از سوی خودم و از سوی توی انجاون برزوشی منترا. سال خوشی داشته باشی، نگام خوش. بدرو.